می تونش راه باز کنه عطو دیوار شاید رسیدات رو وارد یک روز بهتر علق هوادارت تو توم برادیم بخاندی با چش دل به بازی باش دل به داندید پس وا قلب سبز توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا از فردا که قلب سبزت میچید توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا از فردا امیرم فرشید از تهران بح بح مرسی از امیر عزیز از تهران که با گیتار برنامه برنامه‌ی رادیو پاسوردا رو زحمت کشید به شیوه خودش جدید بود دمت گرم مرسی اینجای رادیو پاسوردا شماره 992 من فرشید منفی هم و تا حدود 54 دقیقه آینده با شما و و دیگه تا برنامه بیشتر نمونده خوشین سلامتین همه چی ردیف دیگه گوشتشه ایتون کرد نتائج نهایی انتخابات خبرگان تهران هم اعلام شد و دیگه آقای جنتی هم بالاخره با تک که شده ته لیست و به عنوان نماینده تهی جدولی رفت تو خبرگان عجب انتخاباتی بودا شوخی شوخی لیست انگلیسی برنده شد و خبرگان الان فقط با یک استوان قراره به چرخه این حساب حالا برید نیست از انتخابات بعدی نماینده شورای نگهبان موقع انتخابات بشینه جلو صندوق دونه دونه صلاحیت رای دهنده ها سوال جواب کنه چک کنه کسی رای انگلیسی وقت نندازه تو صندوق وای وای وای فکر کن حتی الان میخندینا ولی باور کن به اینجا میرسیم آقای مسباح که یکی از استوانه های بررا و نظام بودن و متوسفانه پشت در کبرگان موندن از نظر تئوریک مقدمات این مسئله رو هم مطرح کردن البته بشنبین فرموت رئیسی جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقی نصب نشبن تاغود است. مردم تعیین کردن این که جمهور یا دارش حکومت تو نرکان بخواد مردم چه حق داشتن بودن؟ مردم چه که به کسی حق بدن؟ من خودشون دارن هم چه حق برن؟ برسشی هم داشته خیلی خوب از برد باشه مدیریت داره دیگاه همه مردم قبولش داشته باشه او حق خوب حکومت کرده من روحا بله مردم چی کارن؟ شما چی کاره ایشون فرمودن؟ کاره ای نیستین؟ گرفتین چی شد؟ آتو فعلا در حد تئوریه و از نظر آقایون فعلا صندوق رای در حدی که الا قبل شورای نگهبان کاندیداش رو کرده باشه قابل قبوله ولی اگه مردم بخوان باز از این کارا بکنن و از این انتخابی که شورای نگهبان بهشون داده سو استفاده کنن دیگه معظمله ناچار یه فکرای دیگه ای بکنه اینه که از آزادی که بهتون داده میشه برای رعی دادن لطفا سوء استفاده نکنین مرسی احبا امروز یک شنبه 9 اسفند ساعت 5 بعد از ظهر بالاخره یزدم هواش بارونی شد بح بح هوا بح واقعا توپ توپه, توپه. جات خالی محسن هم از یست بوردنت محسن جان سعید که پیش بینی کرده بود یعنی مولا درز پیش بینی های هواشناسی سعید نمیره سعید سلام سلام فاشی جان خوبی سعی چه جوریه باز گفته بودی میاد سمت یزد اونور و بارون میاد اومده دیگه آره دیگه آره وضعیت با... بارندگی و آب و هوا چجوریه؟ ها روزهای آینده بگو بالا خبرها حالا نمیدونم خوبه یا بده ولی برای اونایی که فکر میکردن که دیگه کم کم بهار و بوی عید و اینا را رسیده خبرای خوبی زیاد نداره آخ آخ دیگه وظیفه حکم میکنه و با... باید بگم تا خدای نکرده فردا که هوای مناطق شرقی و جنوبی ایران افت میکنه نخوره تو ذوقشون تازه همش این نیست اشکش مانده به قال معروف کاش فقط کاش <rada> <laughs> فقط سرد میشد بارش اونم از نوع شدیدش بارندگی و رگبار و خلاص همینجور برکت از آسمون قرار نازل آره تو خراسان جنوبی کرمان جنوب یز، یه بخشی از هرمزگان و سیستان و بلوچستان و البته شرق استان فارس تازه سازمان هواشناسی در مورد احتمال وقوع سیل هشدار داده. <تصفيق> اینه که ساکنین این مناطق مخصوصا کسایی که خونه‌هاشون نزدیک ها قرار داره پس فردا فردا پس فردا در حقیقت اسباب اساسی‌ها رو جمع کنن ببرن طبقه بالا و خودشون هم با جلیقه نجات بخوابن. چون معمولا وقتی سازمان هواشناسی اخطاری اینجوری نمیده موقع بارندگی ها مردم تا بیخرون تو آون دیگه ببینون موقعی که اختار دیگه. میده دیگه دیگه, آره دیگه دیگه آب از سرشون هم احتمالاً بگذره بله پس مراقب باشید دیگه مراقب بله. باشید که بارندگی فراوان است یه تلفنم هم باز داریم دیگه ببینید هر روز یه تلفن داریم برای سعید ببینیم چی میگن سعید سلام ببین. بی معرفت بعد از چند ما زاین زدیم پیغامی به برنامه بزن خاله خوب صدات قشنگه قری از اصغرم از کرمان این چی بود نص در چیه آقا ما خیلی مخلصیم که نشده مخلص چی دازون <laughs> چیه کی میگه الان دفعه بعدم از چی دلگیر بودم ولی در هر صورت حق با شماست من عذرخواهی می کنم خاصی <laughs> گیری بهت بده دیگه آره دیگه دیوار ما کوتاه فرشی جان یا بالاخره میگن صدات خوبه بعد یه گیری هم بهش میدن بنده خدا رو گیر خورمونم هم خوبه مرسی اما oh, yes. اما از دیروز که نتیجه انتخابات مجلس تا حدودی اعلام شد و اینا مشخص شد که داداش لاری جانی یعنی علی آقای لاری هم از حوزه غم به مجلس راه پیدا کردن کلا میدونی این لاری ژنتیکی همه زرنگ هم دیگه و این علیشون هم تیزبازی دارو رفت از حوزه قم ثبت نام کرد و یعنی احتمالاً به سرنویش تیمسه حداد عادل دو می میشد و لیست انگلیسی کار دستش میداد حالا کاری نداریم ایشون دیروز در جواب یه خبرنگاری که ازش در مورد اینکه آیا احتمال داره که این دوره هم توی مجلس رئیس مجلس بشن یا نه اینجوری جواب داد بله من رجال الغیب نیستم که بتونم از حالا پیش بینی ولی از اینکه مردم تو حضور جدی خودشون یه صفحه جدیدی برای مشارکت خلق شدن این ارزشمند هست. اما من خواهش که اینو تبدیل به کشمکشی در کشور نکنید. بله حالا ایشون که از جواب دادن و نمیدونم گمانه‌زنی تفره رفتن گفتن سری ریاست و مجلس و این حرفا تو کشور کشمکش و اینا راناندازینو دعوا نکنین و این حرفا ولی خب خدایی وقتی نماینده داریم تو مجلس که یه میلیون مثلا رأی داره یه نفر با 160 هزار تا رأی خب درست نیست خدایی رئیس مجلس باشه دیگه. حال درسته که مهمتر از تعداد رعی ها مسئله این همونم لابی کردن و توافقات پشت پرده و ایناس ولی خب باید خودشون هم به چیزهایی رو مراد مراد کنن دیگه پس لطفا نماینده که رعیشون کمتر از دیوی سه زارت خودشون رو برای ریاست مجلس کاندید نکنن مرسی اه او oh yes. سلام من پس فرشید معفی هم خواستم زنیم زن مییه میسیری فامیله یه ق زد به یکی کار بچه های جدید گروه خیلی بهتر از فرشیده و فرشید زودتر بره یه خالی ما بکنیم خسته شدیم من قطسه رو رو شنیدیم.دعمتتی هم تا بعد تو پسعمویی منی مثلا نه تو فامیلی، تو فام تو با جناق منم نیست یاقاین چه فامیلیه؟ آقا این چه یه نقنم این روزایی آخر داره باب میشه و تخریب بنده. میخواین از بستگانتون تو برنامه حمایت کنیم چرا از بستگان من مایه میذاری آخر من نمیفهمم بچه ها چی کار داریم میکنیم چی کار من؟, من قربون این فامیلات برم من جان من قربون این فامیلات میبینی آره آره فامیلات اینا زمیزن میگن بگو بگو, بگو بزن بشتر الان توجه کردی آخرش که شیرین رو. گلن شما همه تون داریم بشتی قربونت برم کلن همه جدیدن. خیلی متشکرم چی کار کنیم دیگه حالا روزای آخر اینجوریه دیگه اینجوری دارن لط میکنن به ما شنبنده بل. بله حالشون خوبه دای میزنن منو تخریف میکنن حالشون خوب میشه اینا همه حالمون خوبه میخونن باهم باری کلا باری کلا آقا بریم سراغ موضوع برنامه امروز دیر میشه. امروز میخوایم در ادامه موضوع این هفتهمون که انتظاره، این هفته به انتظار و انتظار کشیدن صحبت میکنیم. میخوایم در مورد یک نوع بدخیم و بده از انتظار صحبت کنیم که اسمش انتظار بیسر انجامه. آخ آخ آخ آخ انتظارهایی که معمولاً به سمر رسیدنشون به عمر آدم قد نمیده و گای دونسته، گایم ندونسته، آدم رو به پای یه انتظارایی میذاره. پس سلام مخصوص برنامه امروز رو این اول برنامه تقدیم میکنیم خدمت همه اونایی که همیشه منتظرن که یه طوری بشه یه, یه کسی بیاد یه اتفاقی بیفته که زندگیشون از این رو به اون رو بشه و خب تو این انتظار عمرشون میگذره و زندگیشون همین این رویی که هست میمونه بابا خواه نکنید با خودتون این کارا رو نکنید به قول آقامون داریوش. Un که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد. هیچ وقت نمیاد. آها تغییر دلم گیری میخواد. جونه قسم گذاشته‌ای. حسره بر وره دل هیچ گمی ز من غم نداره آخ آخ, آخ. مسمن غربت و ماتم نداره وای وای وای من آنکه می‌دوم ای درد من چرا چشمم میاره پیش. آقا فرشید جان جان همکه شما داری تموم میکنی از پیش ما میری خب قرار شده من بیام پرا هفته دیگه ببینم چیزی میخوای نمیخوای بگو دارم میام از ایرانو بگو تا چم رو نوستم برات بیارم وا والا آقا خیلی ممنون قربونت برم الان ما آقا هر چی بگم الان ببینید چند هشت نفر ده نفر الان اینجا نشستن خیره شدم به دهن من من بگم فلان چیزو بیار که اونا هم مثلا بخون یه سفارشی بدن دیگه اون اون دوره های این استودیو فقط سه نفر جمعیت داشت من بودم و سامی به خدا دیگه گذشت اون دوره ها گذشت شما اصلا فراموش کن اینه که دمت که من چیزی نمیخوام من خودت بیا کافیه خودتو بیا ببینیم ارمونت برم بریم سراغ موضوع برنامه امروز انتظارهای بی سر انجام بسوز و انتظار به کش یا انتظار به صرف ناومیدی بیانی گه شماره 992 بدانید و آگاه باشید که بعضی در زندگی انتظار چیزهایی را میکشند که هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد پس چنانچه در زندگی به یکی از انواع این انتظارهای بی سر انجام مبتلا هستید همین امروز بیخیال آن شده وگرنه از زندگی خود جز حسرت و چشم انتظاری خیر دیگری ندیدندگانید امزاوت جمعی از همیشه منتظر یه چیزی بوده ها و چششون به در خوش شده ها و همیشه حسرت به مونده. های رادیو پس فر دا دا دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا. حالا شما خواستیم به ما بگین چه نوع انتظارهایی رو بیشتر توی زندگی تجربه کردین و کدوم انتظارها بوده که از همه بیشتر باعث ناراحتی تون شده مثلا انتظار دیدن یار انتظار اعلام نتایج انتخابات که دیگه انتظارات تموم شد دیگه الان انتظار برای اه... چه میدونم برای جواب یه مسیج برای جواب یه اس انتظار برای سر ماه که حقوق بیاد تو حساب انتظار عشق انتظار دیدن یار چی ل... ل... ها گفتیم به اون بگین که توی انتظارهای کوتاه مدتتون چیکار میکنین وقتی که میخواین این دوره بگذره و انتظار بگذره تصمیم ایندازین، گیم بازی میکنین اسمس میدین، فیسبوک بالا پایین میکنین میرین ایستاگرام، چورت میزنین دند و قروچه میکنین آدم چی کار میکنین دیگه یک کاری میکنین که انتظار از نکنه بهمون بگین لا. لا. سلام. سلام انتظار مات دیگم ماه شامم که حقوق او نگرسم در انتظار گرفتن حقوق هست و همه ها ها. بچه ها سلام میرس و او سلام علیکم ما هم همینطور این واسه حقوق بچه ها سلام میرسم من خودم هم همینطور هم بالا به خدا خدا <تصفيق> به جان خودم خیلی ممنونم. <تصفيق> چون حقوق واریز میشه حقوق همه واریز میشه همه خوشحال میشن نگران نباشین هم شما که تماس گرفتین هم بچه ها الی سعید، مرسا شهرام سامی خود من بالا. نگران نبوشین خب بر بچه ها چه خبر چیا دارین؟ الی مرسا چیکار کنم یه بله بگو بله باشه. بله <تصفيق> میخوام برای توی کامنت کومنت اینقدر معذب میکنن آدم اصلا دلم تنگ شده بود بر بله من بگو. از این برد جناح مخالف وارش هی نخیر نخیر میکنم یا نه نه نمی دونم سوسو آقا امیرین کامنت گذاشته بودن توی فیسبوک که خدا رو شو که من تلویزیون سکس خشن ایران رو نمیتونم بگیرم و یعنی تا حالا سکتر رو زده بودم <تصفيق> بله این دیده. مربوط میشه به خبری که دیروز رفتیم تو برنامه را جبه زیادم کامنت داشتیم آله. در این مورد خانم مریم نوشته بودن که الان عکسای تبلیغاتی همون نماینده که دست رفتگر رو میبوسید کف زمین و اون رفتهگره باید جمعشون کنه بله متاسفانه بله آرزو توییت کرده بودن که در تاریخ مینویسن که مردم تهران هرگز نفهمیدن نتایج قطعی انتخابات مجلس 94 کی اعلام شد فقط از یه جایی به بعد ول کردند خود آقای حداد عادلم توییتر کرده بودن که ظرف چند روز گذشته مطلب جالب و قابل توجهی درباره خودم خوندم از ذوق و خوشحالی همشهریان طرفتار جریان رقیب خورسندم از اینکه بخش قابل توجه شوخی های شما به شخصیت و خانواده من نمی پردازد ممنونم چقدر طولانی چه درد بله دیگه بعد از این دل. همه توییتی که داشتن <تصفح> بله آقای حسین هم توییت کرده بودن که کاش وقت اونجوری گونی گونی جریان رقیب رو رد سلاحیت میکردن یه واکنشی نشون میدادین تا حالا این حرفا واقعی به نظر بیاد بله دیگه شرمنده دیگه بله دیگه آقای آرش هم در انتها توییت کردن که کاش بگن کجا فیلتر شکم میخرین ما رو هم بیشتر از این خوشحال کنیم ایلی خوب ممنون بله یه تلفون هم تلفن هم داریم بزنین تلفن هم نمیدونم این چه سیاستیه که تا یه نفر میاد میگه ایلی زیاد میگه بله هی بعد تحت فشارش بذارین معذبش کنین که اینقدر نگو بله نگو بله من اگه پنج نفر رو بیارم که با بله گفتن ایلی حال میکنن شما دست سرش برمی‌دارین بله واقعا بله. واقعاً مرسی خانم ممنون. نسرین ممنونم. ممنونم کی بودین اینا کیه اینا فامیلاتونن اینا کجا ما که غیرت ندارن یه دونه تماس بگیرین طرفداری و مرسی خانم نصری. واقعا ممنونم من هم تشکر میکنم من ولی نمیدونم چرا حجم این تماسای حمایتگر از کارآموزا و کوبنده فرید مناوی رفته بالا آقا من تضمین این صحنه آرایی خطرناک نمیشم آقا این روزای آخر گفته فرشید محبوب دل ان شاء الله محبوب دلها بمونین دیگه چی داریم برامون اپلیکیشن ما رو چند نفر امضا کردن من سری می خونم مری و این بان از تهران حسین عاشق یاسمین از اونجا بازم من بالا آقا فرشی دردشیر هستم دیگه از پاسداران چه احرام از شیرا سالی عاشق آقا رشدی از زوریخ فروخونه گلزی است حرامزاده از سیبری سباه جایی که آرزو بود همیشه و آخرش از همه مهمتره آرزو مرسی از مهرسا جونم از بندرعباس این مخصوصا خوندی که دقیقاجان <تصفيق> من اینجا نوشته <تصفيق> باشه باشه میرییم پیدا میکنین ببینین کجاها چیا نوشته راج بتون هموننا رو میخونین میگه باشه <تصفيق> <بلاخت> اشگاه <تصفيق> <ده. تصفيق> چیزی که از دستمون برطور های ارتباطی رو را بگم ارتباطی با برنامهرم براتون بگم تلفن های ما از دو420 ۲ یا دو و دو و, و, و, و, و, و تلگرام برنامه هم هستش اد پس فردا گرام که میتونن صدا و ویدیو هر چیز جالبی که به نظرشون میاد شنوندگان عزیز لطف برای ما ارسال کنم بله هم راجب نظرشون. موضوع برنامه میتونید برای ما توی تلگرام و توی اپلیکیشن برمون صدا بذارید و توی تلگرام صدا و عکس و فیلم و همینطور راجب برنامه استیک هم من یک بار دیگه توضیح بدم فردا برنامه استیک رو خواهیم داشت در رادیو پس لطفاً اونایی که علاقه مندن تماس بگیرن با لحجه محلی، غذای محلی شهر و روستای خودشون رو برامون طرز تهیهش و توضیح بدن خیلی کوتاه و سری در, در حد 20-30 ثانیه 30-40 ثانیه و اگر دوست داشتید که میتونید ازش اکسم بگیرید از غذاتون یا فیلم بگیرید و در تلگرام ما به اتپس فردا گرام بفرستید رایت شد دو تا انار کشیدم رو موحاتم یه سبز زار کشیدم دو دفتر نقشیام به یادت خودم رو شکل خواستگار کشیدم کارگر ساده بودم اما واسات یه آدم سرمایه دار کشیدم تریلی قدی میرم فروختم یه ماشین آبرودار کشیدم دار کشیدم یه ماشین آب کشیدم آرزو کردم که تو مال من شیرم زدیمونو تو بهار کشیدم مراسم عروسیرم به صرف شیری و شام و نهار کشیدم باه اصل برای آلامشت یه کوپ خالی تو قطار کشیدم با تو صاحب خونه شدم یه خونه با سند منگوله دار کشیدم ای سند منگوله دار کشیدم با این اسمشون چی بود؟ شهیر اسم خوانندش اسم این کارم هست تریلی بی تریلی با مزه بود اما خانم آقا این دختر خانم آقا پسرا انتظارهای بی سر انجام که امروز می‌خوایم راجع بهش حرف بزنیم بین خواننده ها و موزیسین ها هم خیلی خوب درد بی درمونیه دیگه یعنی هر طرف موسیقی ایران رو که نگاه میکنی یکی منتظره دامصدر بعضیاشون نه تنها یکی منتظر که برن وسیله نقلیه رو هم آماده کردند و به ماهی پیشنهادش میدن منتهی وسیله نقلیه شون یکم قدیمیه متاسفانه بله با اصل می‌خواستن برن اما بعضیام هستن که خیلی ناامیدن و از سر اومدن انتظار همش نفوس بد میزنن بابا آخه آقای مرتضوی این چه وضعی چرا ناامید و غمگین انتظار دیگه زلزله که نیست میاد میره ان شاءالله تمام میشه روزی بابا چه به انتظار نشستم, نشستم. انتظار نشستم. خدا کنه خدا کنه کلب هم دست تو رو ببوسه پیش از این که خیلی دیر بشه شوخه گل به بوسه بله بر خلاف آقای مرتضوی بعضی‌ها هستن که نه تنها نامید نیستن تا دیگر رو سر قرار چشم انتظار گذاشتن هی hey هم از طرف میخوان منتظر باش آخ این چه وضعشه عزیز من چشم انتظاری خیلی بد دردیه تازه هی هم میگه منتظر باش تا بیام منتظر باش تا بیام این سر قرارمون دبوره این تو دل شور یه تو رسیدنم چه نمیگه پس خوب من هر چو که هستی منتظر باش تا بیام گفت، گفت. که منم مثل خودت هر سه پرطرف پر زدنم منتظر باش تا بیام منتظر باش تا بیام منتظر باش تا بیام منتظر باش تا بیام من فکر کنم این خانمی که الان صداشو میشنوینم همینی هستن که آقای مهرشاد اونجوری کاشتنش بارونم میاد ساعت هم 8 شب دم درم هستن ظاهرا در جگ بارون با هشت شب نل دیوانه ازم عشق تو رو می طلبم قدونی خاطه در منتظرم میدونم خوب میدونی می تو از اینجا نمیری یک ساعت منتظری برو دیگه بس دمه در منتظرم بی تو هیچ جا نمیرم دمه در منتظرم بی تو هیچ جا نمیرم خدا رو که ایشون بدون ایشون جایی نمیره هست منتظر میمونه دیگه ساعتها خب خیلی گذشت چقدر خوب آدم هم دیگه رایی میکارن ولی آخرش بتونن جیر با هم کنار بیان مبارک بچه اما همیشه هم اینطوری نیست که یه وقتایی هم کسایی هستن مثل آقای امیر شاملو این همه ساعت شبانه روز ول کرده رفته چسبیده به یه زمان خواهد زشته برادر من یعنی چی که آقا شما ای به طرف میگی شب منتظرت باشه شب منتظرم باشه شب منتظرم باشه باز گفت یه پنجره بینشید باشه به دنگ خبرم باشه باش حریره موحا سالشه یعنی چی آقا آقای شامل زشت مردم چی میگن میبینید طور خدا دوستان عزیز شنونده من به نظرم تو همین مایه ها باید دیگه آهنگ از مرحوم جهان پخش کنیم والا یکی همین آقا شاملو رو نصیحت کنن آقا جهان بفرمایید بازم این گفت که منتظرم باش, باش. لب من جر بزیش خوش بزنگ خبرم آقا یک دل باش یا تاج سرم باش بیا تاج سرم باش علی بله ایشون هم که همینو میگن که از آقای جهان بعید بود به خدا چی ماجرای این شب هم از دلدارشون میخوان شب منتظرشون باشه آخه آقا ولش کنیم اصلا گذشتیم ما می‌خازیم چا ما معرفه زب در مورد انتظارای بی سرانجام بزنیم ولی ظاهرا بعضیا دارن بحثو به شب منتظرم باشه شب بیا و اینا طرفو به انحراف میکشونن کشن آقا گذشتیم از آخرش نمیشه تا نبی نمیشه بگم دو نمیشه سای باب بادم دیگه نگونه یا کلبه ی قلبم و نلرزو نه یا که حرف خودت میشی پشیمون که کم منتظرم باش کم منتظرم باش نبه پنجره منشین گوش بزنگی خبرم باش با یک دل آشق بیا تاج سرم باش بیا تاج سرم باش نه نایو ما نه بابا نای نه بار ها گفتم نمیاد ای حالا تو بشین اینجا انتظار بکش. بابا گفت میام <تصفح> گفت دکترش گفته بعد روزی نیم ساعت بی بارش دادن بزنه پیچوندت بابا من میدونم بله حال میده ها چی حال میده اینج منتظرش باشی آخه تو سره دارو کاشتات داره حال میکنه <تصفح> من سنت در همین همینجوری بودم بخدا خدا شفاعت بده بابا ما بریم سر قلال بی سرگیه دیگه چی نمیدونی دختر جوون قرار دارم پیر من چی فکر کردی؟ چه جوری آخه دختر جوون ریخته تو رو ببینه که فرار میکنه چی؟ همون دیگه ریختم رو نمیبینه که چی میگی تو من نمیفهمم؟ ببین من میرم با این دخترها تو تلگرام دوست میشم من تا عکسم عکس شاروخه شاهرخ نفر؟ آره دیگه ماشالله عین جوونی های خودمه خوشتیب و خوشقد و بالا خب الان اون چه دخلی به تو داری؟ میری سره قرار آه. یارو میبینند چه ده دیگه من میرم اونجا میبینم دختره حیرون میرون مونده لالش چکشونت زار با انوار یه پدره پید میرم میشم نصیحتش میکنه خود نصیحتش میکنه <تصفح> چی جیرت میاد ده همین ده الفا که تو بیتاوه میبینه چه دنیاوی از معرفت و دالش در ملح <تصفح> اس عاشقم میشه <تصفح> آرا با خشت سرت تو جهنوم تو هپرتو چی جوانان دور زمون آخرجوری میره سرش بالا که میره دود از کند پام میشا چایدی بابا حالت خوش نیست من سال قرار تا با بای کلاق ملاغا بشین و انتظار بکش ما رفتید خدا برو بابا برو به خیالاتت بره. بزر من به انتظارمون برسیم نایمت نا چرا پسه حالش بعد نشده باشه میگم میگفت اورش رفته بالا جدیدن آشتن دردن داشتن منم کپمه دل ما بیم دل ما بیم دل دل Bad hold bad, I don't shoot. Del del mob. رسید بدترین که نه ولی قطعا یکی از بدترین انتظارهایی که من تجربه کردم موقعه که میخوای بری آمپول بنسلین بزنی کشیدی پایین و خوابیدی منتظری که آمپولو بزنه و نمیدونی که دقیقاً کی اون آمپولو میزنه خیلی لحظه بدیه آخ میزن. آخ آخ اخ, آخ گفتی بالا سرت داره هواگیری میکنه این چیز رو آمپولش میخواد هواگیری کنه یعنی یاداوری اون لحظات واقعا خیلی سخت و نفسگیره خیلی ممنونم از تماس شما بریم سراغ کامران نگرانی ما از آدمی که به چشم خود شاهد پیروزی باشند. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio This is the first Oscar and sixth nomination for Leonardo DiCaprio Thank you, thank you all so very much Thank you بله خب بالاخره دیکاپریو اسکار گرفت به سلامتی سلام کامران سلام فرضشم درسته انتظار بالاخره به پایان رسید بعد سالها بعد 6 بار بالاخره آره دیگه 5 6 بار کاندیدا شده بود دیگه بالاخره بعد از 5 6 بار دیشب توی اسکار جایزه این بهترین نقش اول گرفت برای از گور برگشته از گور برگشته برای 12 رشته کاندیدا بود که فقط سه تا جایزه برگر از بازیگری برای بهترین فیلم برزیلی بهترین کارگردانی هم جایزه گرفت اما مرد ماکس تو ده رشته کاندیدا بود که تو شش رشته جایزه گرفت واقعا رکورد شکست همینطور بهترین فیلم سالم هم رسید به فیلم اسپات‌لایت به کارگردانی مک‌کارتی بسیار خوب مراسم حواشی این جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی رو البته بر بگم پس بیشترین فیلمی که ج... بیشترین جایزه رو فکر این مد ماکس گرفت آره مد ماکس گرفت بله درست. م... حواشی خاصی نداشت مراسم اسکار امسال چرا اتفاقا امسال برگزار کننده‌ای اسکار تسنیم گرفتن بعد از ماجرای وقتی نشدن هیچ سیاپوسی و تحریم و اسکار از طرف خیلی‌ها برای اجرای برنامه کریس روک کمدین سیاپوس رو انتخاب کرده بودند در ابتدای مراسم بود واقعا ده الی 12 راک فقط راجع به این ماجرا مطلک میگفت بعد مراسم به رسما شروع شد لابلای برنامه هم هر بار که روی صحنه اومد یه مطلکی گفت توی قسمت برنامه هم بچه بچه‌ها با فروختن بیسکویت پول جمع می‌کردن برای کسایی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند همه سیاپوس بودند البته جوری بود برگزارکننده که از دل سیافوستا در بیادم امسال پارسال یا یه, پ... یه سری پکیج عجیب غریب بود جایزه داده بودن سوای خود اون جایزه اوسکار خبری نبود امسال چیزی ندادن که مثلا نشه گفت مثل پارسال خوشبختانه نه جوازه امسال همه قابل پخشه تو این بسته ای امسال فقط سفرایی مسافر یعنی سفرهایی هست برای دیدار از جاهای مختلف جهان یه دستگاه لیزر برای سوزوندن چربی‌های اطراف شکم چون اون دستگاه پارسال <تصفيق> جواب نداده نمیدونم چیه <تصفيق> یه قلم سه‌بعدی 130 دلار قیمتش یه بسته فقط 15 دلاری هم تو این چیه هست بسته جمعاً 20000 دلار قیمت این بسته است خیلی خداحافظ خود شکم چه خير گزاش اسکار امسالم از موسیقی چه خبری داری برم؟ ولی متاسفانه خبر بد دارم شیده جهه ای که خودمون بارها از همین برنامه ترانهاش پخش کردیم به خاطر انتشار آلبوماش هم بارها دچار مشکل شده بود آخر وقتی دیشب به خاطر بیماری سرطان از دنیا رفتید و مراسم تحشیش هم چهارشنبه 9 صبح از جوله تالار وحدت به طرف قطعی هنرمندان بیزهران روح شاد شیدا جاهد میریم به اتفاق یکی از کارهای شیدا رو میشنویم به نام در فکر تو بودم و با تو هم کامران عزیز می میکنیم تا فردا تا فردا خدافزی در فکر، در فکر، در فکر تو بودم که یکی رو غبه در اختانم هم من با. توی عزیز من بود توی حبی به م توی عزیزه من بود خره ن آه که من می سوزم به نبیی که من می شوزم به ن که من می سازم. تو که بین و فورا بودیم اوچ رو سلام 2019 دوشنبه شب را ضمن ابراز خوشحالی از اینکه رایهای دیکابیوم و اسکار خوندن با مروری بر عناوین مهمترین خبرها امروز و امشب آغاز می‌نماییم. انتقاد انتقاد صادق انتقاد از حذف انتقاد انتقاد چون انتقاد انتقاد و انتقاد در انتقاد و توصیه ناظران به وی که داشت خودتم شانس و رفتی ولایتتون کاندید شدی و یعنی الان لای باقالی ها بودی؟ امزاوی تفاهم نامه 5 میلیارد یورویی بین ایران و کره جنوبی و سوال فعالان ارسی سریال که آیا واردات سریال سانسور نشدهی کوری هم جز به این تفاهم نامه هست یا نه؟ و ابراز امیدواری محمد خوابتمی به اینکه نتایج انتخابات منجر به رفع سوه تفاهم ها و نظر کارشناستان که حاجی شما دعا کن کینه های غیر شطوری موجود شطوری تر نشه حالا سوی تفاهم های موجود پیش مهمترین نناوین خبری سابقه گذشته را شامل می شدند اینک مشروع خبرها با همکار خوشاوهنگم بوی بوی و سلام برنامه گذارش های رسیده از چارده زنی که تا کنون حضور آنها در مجلس شورای اسلامی قطعی شده است، یازده نفر اصلاح طلب و سه نفر مستقل هستند در همین رابطه یکی از کارشناسان امور نمایندگان زنی کشور به خبرنگار ما گفت واقعاً جای خانم های نمایندهی چون سرکار خانم فاطمه آلیا و فاطمه آجورلو در مجلس خالی خواهد بود همچنین وی با توجه به اینکه که خانمهای نماینده قبلی مهمترین وظیفه زن را بچه داری و شوهر داری می دانستند نگرانی کرد که شاید خانومهای نماینده جدید تفکر درخشان آنها را در زمینه وظایف زن پیگیری نکرده زنان کشور را به انحراف بکشانند. پایان مشر روح با بله اماکنون از طریق خطوط تلفن در خدمت کارشناس مشکل برنامه برادر مشکل گشا از بچه های کف وزارت هستیم با بله. مشکلات ما و شما را گشای همابکند. ای برادر مشکل گوشم بفرمایید که این شمارش آرها بالاخره تموم شد یا نه چی شد؟ بله سلامون علیکم علیکم سلام از کندر این شمارش آرها چی شد بالاخره بله بر اساس اطلاعاتی که ما در وزارت داریم بل... شمارش کما ادامه داره و در حال حاضر امه. هنوز هیچ کدام از انتخابات خبرگان و مجلس به مرحله نهایی نرسیده دیگه عجب با چه خبری چرا اینقدر طولش میدن خب مشکل بلا دیگه همون طور که اعلام شد ام. برای مجلس شورای اسلامی خب. هنوز دو تا نصف شندوخ باقی منده که خب به هم دلیل هنوز از اینا نتونستن تجميع کنن اورا نگاه بی خیال بابا دو و نصفی صندوق چیه <تصفح> <تصفح> همه میگن الکی معتلش کردن پشت پرده دارن چونه میزنن ها نه دیگه ببینید شما باید شایعات رو بهشون توجه نکنید چون حقیقتا این امر باعث کشمکش از روند عمومی میشه و... ها شایعه چیه توی سال جمهوری سال 88 بل. هنوز رای گیری تموم نشده بود نتایج اومد بیرون مقام معظم رهبریتون باشه باش باشه باش اینشونم فیلت پیام داد تبریک گفتیگه بعد امسال باید. اینجوری باید. اصلاً مخ... اجا کام سوال منم فرضوا واسه میشه سوال چیه مشکل سوال کردم من بالا ببینید در سال 88 خب. بنده هم قبول دارم که نیروهای رأی شما بسیار کارکشته و دقیق بودن و خیلی سریع تونستند رأی‌ها رو را بشمارن این حق با شماه؟ یعنی اینایی که امثال میشمارن پاشون انداختن رو پاشون دارن شربت بهلیمو میزنن همش مشکلی میذ بالاخره این عزیزان کنترل عمل میکنن اشکالی هم نداره ای. بنده به نظرم بهتره اینجا برای تشکر از مردم زمان که این همه سر رو خلق کردن آه. اه، یه کمی شعار بدیم دیگه. بابا خوشی تو تو همه شعار بدی حالا بله دیگه بلاخره ثباب هم داره و بسیار امر متبوعی شعار دادن نی دفعه بنده شروع میکنم شما پشت سر ما بیار میدن درود برخامنه ای درود برخامنه ای مرگ بابا ب... مرگ ب... ببین بب. بابا بی خیال برای تشکر از مردم این رو میدی شما پشت سر من بیان تشکر هم میرسیم بله بابا تشکر از توجه شما تاوشبی دیگر و برنامه دیگر و مشکلی دیگر و شعاری دیگر خدا نگهدار مشکل تموم شد بابا بی خیال الو مشکل بابا چاکت شدیگه شد این آقا اینو قد کنید سرم لب بابا دیوانم کرد اون جون خواستم بگم که حداقل انتظار معقوله به یه آدم واقعی اینه که فردا یه روزه تشکل مجلس جدید من او... هم بشه مثل سوئیس که خدایی این دیگه چه چف <تصفح> انتظار منه اگرم هم نشد که دیگه خودت میدونی دیگه نتیجه اونه که نمیدونم فراتای کرباس یه جوره و از این داستانا پیام هستم فوق دکترای جامعه شناسی از استرالیا او اوه ول چه و پیام فوق دکترای جامعه شناسی دمشق ماجر فهمید تیکن داغتم به اینایی که فکر میکنن یه با انتخابات مجلس مثلا ایران شبیه سوئیس نشه نباید رای داد و اینا خیلی ممنون ای این چیکار دیگه حرفتونو مستقیم بزنی چه کاریه ممنونم از تماس شما اما توی اینستاگرام یه چند تا کامنت بخونم از این گفته که یاور گفته انتظار ختم رادیو پاسوردا و گوش جان سپردم به آن تو نباشی چه کسی داغ دل ما بدبختای اسیر وطن و اونم به زبان تنز تازه کنه مشکلی نیست هستن دیگه بچه ها هستن دیگه کشتی سر جایش ناخداش میشه میشه حالا ببینیم چی میشه مهدی گفته انتظار اینی که یه بارم شده اسم منو از تریبونت فریاد بزنی فرشی جون از بس پیام میذارم نمیخونی من نمیدونم باشه الان میزنم چی بود اسمت مهدی 25 و پنج دوازده مهدی بیس و پنج دوازده مهدی بیس و پنج دوازده انتظارت به سر رسید. بعد دیگه دیگه جواد گفته که جواد الهی گفته من منتظرم حداد ترانه نجاتشو بخونه دیگه خون دیگه نشد ایشالا بعدن بعد ار ارفائز گفته انتظار یعنی نه ماه منتظرم رئیس هم زنی بزنه برگردم سر کار فکر کن چرا نه ماه آقا چیه جریان قضیه چه چرا نه ماه توضیح میدادی خوب اسم نه ماه میاد خواهدم فکرش هزار را میره دیگه خلاصه ممنونم از کامنت هاتون در اینستاگرام و همینطور در فیسبوک هم کامنت زیاد داشتیم بریم سراغ برنامه خودمون به انتظار داریم این هفته حرف میزنیم و امروز راجع انتظار های بی سرانجام توی زندگی انتظار هم هست هیچ وقت به سرانجام نمیرسن یعنی کسایی که درگیر یه همچین انتظاراتی هستن که الوقت خودشون هم میدونن که بی خودی منتظر نشستن ولی بازم ترجیم میدن منتظر بشینن و انتظار بکشن شاید چون کار دیگه ای ندارن بعد همین انتظار کشیدنه میشه کار و هدف اصلیشون توی زندگی آقای من، برادر من، خواهر من، ده ده عزیز من، همون عزیز من آخه تو عاشق یکی بودی به طرف گذاشته رفته خب رفته دیگه حالا هم تو بشینی انتظار بگیشت اسمشو خالکوبی کنی پشت ماشینت با رنگ بنویسی چشم انتظار برگرد این صحبت ها خب که بر نمیگردی که اون رفته یه جا دیگه آشیونه عشق خودشو بنا کرده ولی خب این حرف تو کته بعضی نمیره دیگه بشی منتظر چه کنم بشی بشی منتظر زمانی انتظار کشیدن کار با ارزشی بود مثلا وقتی من بچه بودم خانم همون شوهرش اسیر جنگی بود تا وقتی من بزرگ شدم این خانم منتظر بود شوهر برگرده و همه تو درو همسایه از صبر و انتظارش تعریف میکردن اون وقت این سریه دوستام با پسره قرار داشته ده دقیقه وایساده طرف نیومده پاشو اومده اینجا خونه ما پیش گفتم دختر یکم انتظار کشیدنم بد نیستا گفت چی میخوای حالم بگن نگاه قالش گذاش گفتم نه ولی حالا یکم کم بیشتر منتظر میموندی گفت انگار یادت رفته پسر این دور زمانه چطور گن عمدن منتظرت میذارن ببینن کنه یا نه من نیستم گفتم باشه بابا حالا حال نداری منتظر بمونی خلی مفهوم انتظار رو زیر سوال نبر دیگه گفت چی؟ گفتم یعنی الان هرکی منتظر دوستی رفیقی یاری دلداری کسی میمونه کنه است؟ گفت نه پپس گفتم ببخشید؟ ببین الان عصر عصر سرعت نه انتظار انتظارای بی سر انجام. منتظر موندی طرف نیومد میذاری میری یه قرار دیگه چی بگم والا؟ به نظر من که در عصر سرعت و بدو بدو هم میشه امیدواران منتظر موند؟ بر غریب سلام سلام سلام به همگی فرشید جان شننیدنطبق دوم ورزشگاه آزادی رو حراج کردن درست درستشنلی فرشید جان فقط هزار تومن البته <تصفح> قیمت بلیط رو ها آره چند هفته بود که دیدن بازیار رایگان بود بدون بلیط تو تهران و شرفان ها به خاطر کشوندن تماشاگر به ورزشگاه ها اما سران قم وقتی متوجه شدن این کار مقایر با قوانین فوتبال حرفه و باید حما، <تصفح> بیلیت فروشی اعلام بشه مجبور شدن بیلیت ها رو arzun کنن مجبور شدن آتیش بزنن به مالشون دیگه یعنی به بیلیتاشون آره آتیش زدن حراجش کردن تازه جان امروز یک گزارش هم پخش شد از شبکه خبر جهر رو بحث دو تا از کارشناسای فوتبال آقایان نصیری و عظیم زاده در مورد اصلاح اساسنامه فوتبال جالبه که عنوان تیت گزارش دوربین خبرسازان این بود تحولات در کمیته اخلاق چایگی جاذبه بدی بخشی از این صدای این بحث دو نفره که در کمال آرامش هم اتفاقا انجام شده بشنوید بشنوید فقط ساکت باش خواهش من خیلی تم <تصفيق> راش میگی ایزاک رافتم مصاحبه کرده گفتم آقا اول اون ویلی محدود کردم اونها که اومدن فیفا رو فلان کردن فلان از این؟ فرض کن من بی سواد شما همین الان فقم خوندی خواهش میکنم یه تکسی بنویس همین الان ما بذاریم تو این که هیچ تلقیب جذونی نکن به یه تکسی بنویس نه دارم میگم نه اون خدمت شما از کار این ماده خوندی شو، ولی اشتباه خوند ماده که داده دست ملت این نیست اینه من میخونم حالا از روی خودش اجازه به نخه ببخید خیلی یک جه عوض کردی جاجا به بزن بزنی بوده خلاصه دیگه اینا با این اخلاق میخوان کمیته اخلاق متحول کنن و طبقهدار بازیکن ها مثلا تو شادی بعد از گلشون چیز نکنن از اون کارک نکنن بله واقعا همینجوره فرشید متاسفانه با یه خبر تأسف، بار باید پایان ببرم خبرای امروز علی اکبر دارستانی مربی بعدنساز 57 هفت ساله یه تیم نق تهران امروز مثل همیشه خاش شروع کرد در حال گرم کردن بازیکنان بود که دچار حمله قلبی میشه بعد از انتقال به بیمارستان فیاض بخش در کمال ناباوری متاسفانه فوت میکنه روحش شاد ای بابا هم تو هم کامران آخر بخش هنری و ورزشی خود بد خبر بودین روحشون شاد ممنونم ازت فریدوز عزیز و بد خداحافظی میکنیم تا فردا که امیدواریم خوش خبرتر بشی امیدوارم خدا نجات خدا <تصفيق> با توجه به پیش ها اخیر آخرین نفوذی‌ها و فتنه‌ران‌ها و اشغال سنجار‌ها مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان از سوی این دستمانی‌ها زبون از همه عزامیت‌ها ویژه بزنده‌های دوره‌ای کل نکشور دعوت می‌شود. برای همپکری و پیدا کردن راکاوی برای مقابله با این راکوت حضور به هم بهرسانند. مبارک همپکری. یک بودجه برای وارد كردن موتور هزار با قابلیت زیر كردن فنگران به تعداد كلیه اعضا وارد كردن تعداد متنابهی پنج بکس زنجیر گاز فلفل و هر ای برای در نطف خفه كردن ترفداران آنها پیدا راهکارها راهكارهای جدید برای تأمین بودجه با توجه به از دست دادن منابع تأمین بودجه مجلس شورای اسلامی و جمعوری پیشنهاتای اعضا برای تغییر تاکتیک های لحکردن طرف داران فتنگران در هر موقعیت زمانی و مکانی. توجه در محل تجمع، گلگاف زبان و دستمال کاغذی به اندازه همه اعضا موجود می باشد ستا به جمعوری بازمانده های کل دلواپسان و شده شدگام کل, کل کشور فرشید جون سلام من انتظار من چی میگم فرشید انتظار کارت پایان خدمت داداش آخ آخ آخ آخ, آخ،, آخ،, آخ،, آخ. آخ،, آخ،, آخ. چند شده الان چهار ماه خدمت دارم می‌کنم 4 ماه خدمت درسه کوتابیسیک ما فرشی کوتا فرشی وای وای. فرشی, وای. فرشی... وای. اینه میگن انتظار آقا اینجوری بخوای بیسکونی بی موتور رد شد اینجوری بخواید بی قراری کنی دووم نمیاری که قربونت برم این فرشید فرشیدی که تو میگفتیم ما 20 ماه خدمتاست ان تموم میشه چش به هم بزنی تموم میشه آره اما بعضی وقتا این انتظار های بی سرانجام که امروز داریم روی به حرف میزنیم جنبهش سیاسی پیدا میکنه من یادم مثلا ما از روزی که یادمونه یه دی میگفتن این اخوندا نهایتش تا یکی دو سال دیگه رفتنیان یعنی. آقا من که از پنجم دبستان بودم این حرفو میشنیدم یا بعد تو مثلا کوچیکتر. الان هم که اینجا هستم و با همین اطمینان این عزیزان رو حرفشون حتی ذره ای در موازیشون عقب نشینی نکردن به هر بعضی ها اینجوری ترجمه میدن که انتظار بکشن دیگه توی همین عالم سیاست یه نو دیگه انتظار داریم و اون انتظار محقق شدن هایی که بزرگان نظام به مناسبت های مختلف مردم میدن حالا هر گروه و دسته و سلیقه یه جوری منتظره دیگه یه دمتظرن آمریکا رو زیر پا بذارن اسرائیل رو نابود کنن قدس رو آزاد کنن یه منتظرم ببینن این مردم سالاری مردم سالاری که میگن بالاخره کی حاکم میشه که دیگه ما مجبور نباشیم به فرض از روی لیست مورد پسند آقای نماینده و رئیس جمهور و اینا بر خودمون انتخاب کنیم این هم تو جمهوری اسلامی فعلا یه جورایی انتظار بی سر انجام بسید پیش <تصفيق> روزنامه سیاست روز وابسته به اصول گرایان امروز تیتر زده بود که چرایی ناکامی اصلاح طلبان در کل کشور و اصول گرایان در تهران پیروزی شکنندگی هر دو جناح <تصفيق> ناکامی اصلاح طلبان در کل کشور که از ربطی بشور نگهبان نداره داره؟ نداره تهران هم کی گفته اصول گراه ناکام شده انقدر چی کس نفسی نکنین دیگه؟ روزنامه فرهیختگان از قول رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مورد انتخابات هفته اسفند تیتر زده بود که مردم، رهبری و انقلاب اسلامی پیروز شدند همه رو گفت کلن همه پیروز شدند ملکه الیزابت دوم هم پیروز شد بازنده نداشتیم اصلا آبریم آوری. خب امشب گذشت ساموئل بکت نمایشنامه نویس مشهور ایرلندی توی که از نمایشنامه هاش به اسم در انتظار گودو دو تا کارکتر داره که از ابتدا تا انتهای نمایش فقط انتظار می‌کشن. انتظار چیزی که هیچ کس حتی خود اونا نمیدونن چیه چیزی که شاید از بیخوبون اصلا وجود نداره و نداشته ماجرای آدمای این نمایشنامه درست مثل قصه زندگی خیلی از ماهاست که هر کدوممون توی دورههایی از زندگیمون همیشه ی جورایی درگیر درد انتظار بودیم انتظاری که تلخ یا شیرین به زندگی معنا داده شاید اصلا چشم انتظاری، چشم براهی و منتظر کسی و چیزی بودن یه بخشی از بازی زندگیه و شاید جذابیت رازالود فرداهای زندگی ما بدون این انتظارهای رنگارنگ رنگ به بازه تو چششش که نمونده تو دلم حرفی ندارم دیگه وقت رفتن سفر دور و درازه انتظار روز پافی تو دلم داغ زد سرمو. انتظار آفتاب کرم تو دلم یخ زد اما برف و بوران ابر و بارون چیکه چیکه توی نافدون روز عبری روز سرما انتظار روز برفی